در نهت و گفتیم با من خودش در چهار چیز از در چیز بعد گفتیم نهت در دو تا که ارام برد در دو تایی اگر به زمین موسیق از ترون به هم مطابقت میکنه گفتیم در این صورت در درست اصلش نهت در, این در, این در این باز به سلام هم. رفت داده نهت حقیقی به حساب چون نه. نهت که به زمیر خود محصوب حالا اگر به زمیر محصوب رفت نداری و ایلا یعنی چی و یعنی و لم یارفه از زمین اگر رفع به زبیر محصول ندار یعنی اگر رفع ندار دارم یه قول دادم داشتش بود ما بازش عيد حالا می وقتتون نه حسنت در اون دوتا که تعریف و تنکیر یکی شدر نکره بودن میشه و در اعراب در وقت باشه با ما مطابقت اما در دوتای در که مقرف یاد یا تصدیر یاد یا جمع یاد مزکر بیاد یا مهندس بیاد داره با مابعد برد حالا موابطش چیه جاریه؟ مهندس حقیقی نظر واجبه که چیه چه؟ محننس بیاده محننس حقیقی واجبه که محننس حسنتون جاریه حسنتون و از طرف جاریه استوزاهه رو رفت ده و میدونید که اگر فیل به استوزاهه رفت خودش چیمی هم؟ مفرد میدونید زره بر رجوعون زره بر از بلان زره بر جارون فرقی بگیری دیگه دست می بسته اینجا می بینید که جاریه شده چی پایل و حضرت هم مقدر حالا نکته اگر به جای جاریتون بود دا همیده جرون آلیتون ایم. ایم. رعته اینه لقه ملاقات کردم. کردم با دو تا خانم، حسنن ما با خانمی که زیبا بود شد تا غلامان شد الان حسنا صفتشه در تاریف و تنگیر و در اعراب که نست باشه داره با رو بگیر اما در افراد تصمیم و تصمیم آیا با مواقبش مطالاقت بکنی یا مواقبه با ما با go و با, تا با اون تابه شده به واسطه با با اون تابه شده عمو به واسطه ها خوشباهتی که این در حکومت یعنی اگر معتوبون اومده این ستون چیه ما اومده جا همیزهیم بندون یا فندون یا تومنون یعنی خلاص هم در چون؟ اگر نیومده ممتی معاوتی ممتی ما جا همیزهیم بندون و فندون morning oh. that در خالج اینو بابه. یعنی چی؟ یعنی مردم و همه موردن مردم و همه همه قد اعمال حاجو قد حد همه حاجی ها اومدن و پیاده هاشون all that. و اون هم به عبارت لفظی که تکرار شده او معنوی یا معنوی حالا معنوی داره ببینید لفظی اگر بخواد بگی در هم در اسم میاد هم در فعل میاد هم در حرف میاد و هم در جمله میاد انما علوس و جستو انما علوس و سره کل جمله دوباره چی شده تکرار شد لفظی در جمله گاهی اوقات هم لفظی در چیه؟ اسم میشه زیدون زیدون جا گاهی اوقات در میشه جا از جا از زیدون گاهی اوقات هم در حرف میشه اگه باشه در که حرف اگر خواست تکرار بشه و تحکید لفظی بشه به همراه اون چیزی که بهش متصله یعنه اِنه اِنه زیدن قائمه گفتی تو درست؟ این نزيدن ا ان نزيدن اول اینم مال تاکید که شونن اپتیماتوزی دادن مال این اول معنوی یا تاکید معنوی تاکید معنوی الفا مخصوصی بده با الفا زغو عن نفس یکیش نفس يمكن ايه که این النفس و اعضون و انفس در این خصوص ها در باب تحکیل به اعیون و انفرس کردن و, و یطابقان محکد و اینها مطابق با محکد میان غیر تصمیه در تصمیه نمید یعنی اگه گفتی جا از ایدون میگی چی؟ نفس رو و اینو جا از ایدون میگی چی؟ انفرس هم و اعیون هم درست شد؟ اما اگه تصمیه چی؟ چیز؟ می در تصمیه مطابقات درسته؟ می گه ویتابقان این نفس و این المعکده این چیز روی که قرار تحکیلش بکنن در دیل تصمیه حالا در تصمیه چطوره؟ و هما پیها کل جمع هما یعنی نفس این اما این نفس این در تصمیه به مانند جمعه من بکنه می جا از زیدان چی چی؟ انفس و هما جا از زیدان اعیانو همان جایتون باشی گذیم این لغت افزه این که کتاب خلاست دیگه لغت افزه رو گفت که چی؟ که تصمیه به تصمیه اضافه نه بعد از این گفتیم بعد از این لغت افزه بهتر کنیم این که مفرد بیاریم بگیم جا از زیدان چی؟ نفسه همان باز تصمیه به و دیگه وقتی بعد از این مرحله لغت پسی وجود داره که نفس و ما رو هم چیکار کرده. پس کلمه نفسوئیل با ماقبل بود مطابق میاد در مفرد و جمع در تسبیه مثل جمع باش به می حتما بعد باید به چی اضافشن؟ به زمیر ومقایی هم که به زمیر اضافشن اعرابشون چیه؟ اعراب تصمیه اعراب ملعقه به تصمیه جا از رجلان کلاه ما رعی تو رجلین بگید کلاه این ما مرر تو به رجلین کلاه یعنی من ممکنه بگم مثلا جا هنی از زیدان پیش من دوتا زیدان اومدم تو بابر نکنید و آکار که هر دو یا یکیشون اومده اون یکی رو به حسابش بدشن. یا بگین اینا دو تاشون خیلی خیلی با هم فیقان یکیشون که بیاد انگار دوتا تا اومده ها دو هن. جا از زیدان من برای خدای که بگم نه هیچ احتمالی نداره هر دوتاشون تاشون دو تا, دو تا هشتا آدم اومده میشدن واسه خاطری ای که این مطلب رو بگم میگم جا از زیدان چی کلاغ ما پیش من زید ها زیدا هر دو هر گروه یعنی یکی نبود که دوتا اضافه میشه کلا و کلتاله مصابی و کلمه کل لفظ کل که دیدید دید. میاد؟ برای جمع و کل و جمی این هم برای جمع این هم باید به زمیر اضافه شده. و آمه این هم باید به زمیر. از به داره لغیر برای غیر تصمیه هست لغیرهی یعنی لغیر موسنا غیر موسنا چه چیزاییه مفرد هست و جمع جمعش کشفان نداره پس هست از ملاکت و کل هم از ما میتونستن بگه جمع هم میتونستن بگه آمونت ام. این مال جمع اما برای مفرد که کل میاریم در که داره اجزا رو همه مثل دار، خانه دارتون افتاده نه؟ مثلا میگم اشترای تو داره خریدم این خونه رو چها میگید باور ممکنه نکنون همه میگم اشترای تو داره چی چی؟ ها وقتی کلها کل ده ها میگم کل اومده تحکید چی رو میکنه؟ مفردی رو که دارای اجزا کل در واقع تحکید چی رو میکنه که اجزا داره یا وند دارای افاضه مثل مالایی دارای افاضه یا مثل جار و اضر دارای اعضا لغیری منزی اجزاء غیر مصنا از چیزهایی که دارای اجزاء منزی اجزاء یسه هو افتراق ها از دی اجزاهایی که یسع هو افتراق ها صحیح ارتکاض چی بشه درست یه موقع مثل مراکب ملائکه داره اعزاره افراد. سعی کنیم مثلا بچی بشن، جدا بشن، یه ملائکه اینه یه ملائکه. درست شو؟ اما یه موقع هستش که مثل مثلا داره. مثل عبد. من یه غلام خریدم، عبد. آیا صحیح است اینو افتراقش کنیم از وسط نفرش کنیم؟ نمیشه که. نفسش مردن، نفرش مرد. از این جه انقضا میریم. یه جوب کار شو، نطایی با هم شریک خریدم. نمیشه یه لنگه نبه درده این میخوره نبه درده ایم. ولی میتونه یه روزی میخوشه یه روزی آه. لذا اینها افتراق دارن اما افتراقشون چیه؟ ولو حکمند یعنی ولو کانل افتراق و چی چی؟ ولو اون در حکم از هم جدا باشن افتراق بگذارن مثل عبد یه روز برای این کار کنه یه روز برای خب میشه در باقون چقدر عبد خریده اگر قرار شد, دو روز برای یکی کار کنه یه روز برای یکی چقدر هفته بوده؟ یک سر بوده. آه؟ پس بنابرای این میگه چی؟ میگه برای غیر موسندان غیر موسندانی که اجزا و افراد داره و صحیح از هم جدا بشن مثل قوم ملائکه که میتونن جدا بشن یا نه اگر صحیح نیستش از هم به طور جسمی جدا بشن و به طور حسی حکم از هم داره این طول عبده کنید این ماله کدونه؟ بلا حکمه داره زی اجزایی که حکمیه برای اون زی اجزایی که جسه و افتراقه ها مثال نزد مثالش معلومه سجده داره ملایی که کنیده ها جا الگوبه کنیده حالا و یتسلو به زمیر مطابقه به محکم اینها همشون الفاظه معنوی متصل میشن به زمیر زمیری که مطابق با ما یک تصرف به زمیر مطابقه مانکه مجاحبت نوی نفس داشت این داشت مکلا داشت کلتا داشت کل داشت جمعی آمه همه باید اشترایی تو سیار اصلا ممکنه اینجا میشه چکای کرد نه یعنی جایی باشه که نکره باشه و مبید باشه ترکیدش اشکالی نداره ترکید. اما اگر نه مبید نیست ترکید همه ارام لا یا نکره نکره ترکید الا مال مگر با فاید با و من سنبه و از این جهر این که نکره باید فائز داشته امتنه ممتنه از شما این طوری بگید رایی تو رجالم نفسه دیدم مردی رو خود خودشو یه اگه که کسی تو رو مردی دیدی یه خود خودش منانه دید اما این مثال جازه جازه اشترهی تو عبدن خلیدم. خریدم عبدی رو کلش. ممکنه یه نه با همه چون ما بعضی روزا میدونیم می عبدشون میدونیم از مردمی که برای که بیگه برکار بیگه نه تو عبدن کن همه شو که تو عبدن تمام شد حالا دقت کنید اونو خوندید و ازا اکده المرفوع المتصل قوم باشه یا قومتر متصل اگر بخواد تأکید بشه اضاعب که در مرکول متصل بارزن و مستترن حالا چه زمین بارزش داشته باشه مثل قومتر قومتر چه زمین متصل مستتر داشته باشه مثل قومو حالا قومو بلند شید بخواهم بگم بلند شید همه تأکید رو باقوشه ترکید کنم حالا چه بارد چه مستدر فرقی نمی کنه. با نفس و این اگر بخواد ترکید بشه باید چی کار کرد و بعد منفصله حتما باید بعد از زمین منفصله یعنی اول باید یه زمین رو بیاریم بعد بتونیم با نفس روی چیکار چی کنیم من میخوام بگم خودت بلند شد قوم. اکید کنم میگم خوده اگه بگم نفسو چی؟ حالا اگه قومو بود بعد بگم قومو با نفسو این با کل باید با نه قومو کل به بعد از ام پوسوکو قم انت مرفوع فقط ها حالا چه باعث چه مستد فردی عローブ البدل بعدش